شاو زیر نظر محتی سهیلی و صاحب دلان سخن شناس سلام و درود گرم ما را بپذیرید سلامی که از جان مایه می‌گیرد و درودی که با صفا و مهر رشته است امشب هم بعض می رنگین و دلپسند داریم و سخنوران و هنرمندان برانند که در خاطر شما شور و شوق بیافرینند شاعران به مدد تبع آتش بیز و نوازندگان با سرنگشت شورانگیز که در گونه حالتی در شما برمی‌انگیزند و خواننده‌ای با نوای نوازشگر در خلوت دل‌ها شور و مستی می‌آفریند شاعران ارجمند ما عبارتند از آقایان سید علی مزارعی و رضای ثابتی نوازندگان بزم آقایان اسدالله ملک فرهنگ شریف و منصور صارمی و خواننده ما آقای ایرج هستند خانم پژوهش و آقایان رضایان و بهرام سلطانی سروده های شاعران را بیان خواهند کرد تهیه برنامه را هم آقای عبدالحسین فهیم عهده دار هستند خب حالا می پردازیم به اصل برنامه یعنی از آقای مزارعی که میهمان گرامی ما هستند از شیراز تشریف آوردند ما استفاده کردیم که در این برنامه شرکت بکنند خب آقای مزارعی مطلعی به فرمایت شیری بخونی این شما و این جنواندگان و این هم میشه که باید جد داشته باشید و از سواد بفرمید شهر شیراز از دیرباز از زمانی که به سال شیرازی و قوانی با هم هم مجلس و هم محفل بودند انجمن ادب داشت تا به زمان روحانی وسال فرزندزاده وسال شب استاد ملک و ملکوشعراي بهار به شیراز آمده بود و در انجمن ادب شرکت کرده بود فیسن جمان عدبی همون مرحوم روحانی, روحانی رسال سهن. همه شعرها اشعارشون نمیخوندن البته عرضه میکردن در حضور استاد یکی از شعرها شعری از حافظ تزمین کرده بود غزلی از استاد سخن حافظ وقتی که خواند البته شعر تناسوبی نداشت با غزل حافظ و عیبی هم نداره که تناسوبی نداشته باشید تو عیب داره ولی خب نوان میتونن کنند برسند به اون کسی که به حد علا رسیده حافظ به جایی که دیگه دست کسی نمیرسه خیلی مهم نیست به نظر بنده به زبان این بوز اگه بگیم بعض چشه مثلا حافظ سعدی رو تضمین می بعضی ها بعضی, بعضی ها به گاری رو بکسل میکنن به یک لوکوموتی اون پرکشش و این کندرو بله این همون گاری رو به بل... ماشین <تصفح> <تصفح> بکسل کرده بودن ملیک و شعرهای بهار که در وضعی قرار گرفته بود که هم بایستی تکری کنه احترام کنه از اون شاعر و هم نمیتوانست خلاف واقع بگه گفت که واقعا بسیار عالیه بسیار خوبه غزل بسیار خوبی از این تزمین بیرون میاد خیلی عالیه این تمام غزل در این حال تعریف توصیف از غزل حافظ کار کرده شعر شاعر رد این گفتن این غزل عالیه از این شعر بیرون بیارین غزل خوبیه بقیه‌اشم مهمل است خب این خاطری از مرحوم ملک خوب شد یادی از سازدوان ملک کردین در این برنامه اونم شما سبب شدید و حالا چی شد می‌خواد بفرمایید آقای یک غزل است وین اسم تکیگاه ها اوریزی. چند تا شعر برای بعضی ما آوردید؟ سه تا شعر. سه تا شعر. چه بهتر دیگه. آقای صبوری تیم لووتان می‌کاره قرآن اینترنشنال. خب. نیم شب دو شاعر داریم. بهترین است که همون بوت سوت شعر بخونند که دو شاعر دو تا سه تا شعر بخونه. بله. همیشه سه شاعر بوده یکی دو تا شعر می‌خونه. از نظر کمیت مثل همیشه است. نظر کیفیات هم که حالا معلوم میشه. خب بفرمایید شما چی می‌خواید آقای مزاری؟ تکیگاه آرزو بله قذلی؟ اگلی... بله خواهش میکنم در میان مردم چشمی نگاهی دیدم بیگناهی را در آقوش گناهی دیدم سینه سینین او را دیدم هنگام خواب از برای آرزوها تکیگاهی دیدم تا که خوبی <تصفيق> جا نمی گیرد زمستی یک نفس در سینم این دل سرگشت را هردم به راهی دیدم سوختم در پیش شمع روی او پروان وار سوختن را در هوای او پناهی دیدم دوست می جان باختم در راه او دوست می دام جان باختم در راه او هر چه دیدم در رهش از اشتباهی دیدم زندگی را در صفای عشق مستی پروری عام را در گردش چشم سیاهی دیدم ]اخوت. لذت اشق و پشیمانی به گاه آشتی لذت اشق و پشیمانی به گاه آشتی در میان عشق چشم آز خواهی دیدن آف مفردین مفردین <س Irish> تمام شد؟ بله پس ما آفرانون به جا بودیم دست بکنیم دست ببینید که هم شریف هم تکه دادند و تکه رو صندلی پیدا کردن و حال با شیر شما و دوستان دیگه آقای ایرج و آن ما باید شما میرست آقای ایراج عجالی نفرم من منتظر خب یه قطع شیر دیگه تونو جزفر میدید که آقای رزایان بخونم آقای, شایدار. آقای, شایدار. آقای شایدار شما هم روی میتونید آقای شریف شما هم روی فروغ فریبنده ی فروغ فریبنده ی صوفگاه چه خندت به شب زندداری ما دو چشم سخنگوی افسونگری چه بندت به چشمی زمستی نگاه خشنده اشک گرن مایعی چه لغزت بر روی ذبیم گناه سرنگشت انگشت زیبای عاشق کشی که پیچد به پیچند زلف سیاه ذلعل لبی عطالین بوسه‌ای چه گردت به پیمان عشقی گباه سخنهای نقض نصیحت گری چه آرد زرف رفته ای را به راه دل آرزو پرور عاشقی دل آرزو پرور آشقی چمی لرزاد از شوق در بعدگاه امید من ای ماه این ها از هر فریبان تویی کمان محبت اسیر قامت عشق یعنی قمی دلپذیر سرور جوانمرد آزاده ای که افتاده ای را شود دستگیر جهان نشاطابر کودکی چه آنی بر هم نگشده هست چیر تمنای وصلی زشیرین لبی که شوری به دل افکند ناگذیر سب و چیز پروانه سرمست پروانی که می سازد از تاج گلبن سریر صحو ی نسیم سحرخیز صاف چه مرخلی زد از دامن آبگیر صدای روان پرور چشمسار صدای روان پرور چشمسار که nilق زدا هست از کوه بزیر همه زان چه گفتم دلنگی استر ری چہر یسی بار گذشته کریم روان سوستر از سرشت یتیم پراشوبتر از سر زلف یار که افتاده در هم به دست نسیم گرانمهتر از دلی چندران امیدی نشسته است بر جای بین دلنگی سر از یکی شعر نقص که سرچشمه گیرد ز تبعی سلیم قوی تر ز بجدان که در برد جان از گناهی عظیم همه هست فرخوند دیدار تو همه هست فرخوند دیدار تو خوشم دل که گردد گرفتار تو آفریم آفریم بایی مزارین شیرتون بسیار بسیار لطیف بود و تشبیهات تازه و مخصوص به خودتون رو برش زیاد بود شیر خیلی متسکرین و الا از آقای می‌کنیم که سوابق میشیرتون رو بفرماین. پس آقای شما شروع بفرمایید. خواهش. جی پرز چین و خمش کشیده است از دوش او تا کمر فروزنده چهره دلارای او ز صبح جوانی فروزنده تر نهفته تنندر پرند سپید زده صبح سر از گریبان او پدیدار چون نور در آب دن به سینه درون راز پنهان او. چشم فسونکار جن پرورش سرا پایم از ذکنگه سوخته شگفتم که آن نرگس شرمناک چنین خیرگی از که آموخته شگفتم که آن نرگس شرمناک چنین خیرگی از که آموخته خیلی گرم و آرایش رنگ شر تنی نرم و پیرایش سادگی روان بخش و زیبنده و دلفروز چه روز نخستین دلدادگی خیلی او در هم و دلپذیر چ اندیشه و عشق او کنار کناور و برش دل نبا و زلتیف چوب بوی در آغوش گل خوفتگان. نظر بر رخ او نگیرد قرار بلغذد به رویش ذساافی نگاه. شبت برتر از پاکی و راستی نشیند اگر در کنارش گنار چمنها در صوب دم به آقوش گل رفته همچون نسیم رخ او ز سرخی گل انداخته حوث سر نهاده به دامان بیم تن او هم آقوش ناز و فریب فتاده بران بستر سبز رنگ مرا پیش آن نقش آذار سوز نپای گریز و نجای دران بردار قید و بند رسوم به آقوش او جانم آمد فرود به بیخیشی از دل امن خواستم ولی تا به خیش آمدم دیر بود به زیر لباهیش از سین خواست درامیخت با جان من جان او در اون لحظه چشم تبا من نمیدید جز برق چشمان او آفالین آفالین آفالین آفالین آقای مزاری هم قزلتون هم دو قطع شعرتون بسیار, بسیار دلنگیز و لطیف بود و حالی کردیم سرمسکننده بود برقا نهایت خب حالا نوبت میرسد به آقای ایرج که در اون گوشین شدن تشوی بگه جلا این ایرد ج خب آقایی رجب امروز چی حاضر کردید برای شنواندگان؟ خوشید باید ترک خب گفتید که باید ترک میخونید آقایی رجب بله با. پس لطفا این چند بیت رو که تقدیم تو میکنم با آواز بخونید و برای اطلاع شنواندگان عرض میکنم که این چند بیت از آقای علی اکبر است دوستان نوازم کنم که اما آقایین ملک و دوستان عزیز آقای شریف و آقای سارمی هستن. بله. با. دارم شم باشم در دل شبها بسوزم روشنی وخشم میان جمع و خود تنها بسوزم سب سوزن روشانی بکس نینے جانو سنب سوزم عشق بر خاکستر پروانه ریزم یا سمندر گردم و در شعل بی پروانه بسوزم شم باشم عشق بر خاک سر پروان ریزم یا سمن در گردم و در شعل لاله‌ای تنها شوم در دامن صحرا به کوه آتش کردم و در حسرت دریا بسوزم که شبنم باشم و برگونه گل‌ها به لفظم اشک شبنم باشم و برگونه گل‌ها به لفظم برق لبخندی شوم در قنچه لب‌ها بسوزم بس بس ده بس بس. ده بس. بعد از آواز می به آقای رضای ثابتی آقای ثابتی حالا اگر که مطلبی دارید خاطره دارید بفرمایی اگر نکه شیعه بفرمایید خاطرهی به نظرم می رسه که چند پیش اتفاق افتاد و اون اینی که شبیه به یک کتاب فروشیه بوری چود. در این کتاب فروشی دوستی واسطه بود. این دوست بسیار اهل ذوق و تا حدودی هم شاعر خودش بود. زین. این واسه اینکه من بوری شدم شروع کرد شد خوشو بشو عوال بسوی و شخص ولی این خوشو بشو با شعر کنید صحیح مثلا شروع کرد که بله وحچه خوش آمدی سفا کردی چه عجب شد که یاد ما کردی ولی هیچه عشنا یا همین حال ما نمی پرسی منم هم همینطور جواب و دادم ولی یه نفتهی در این وسط بود و اون که اشعاری که ایشون می خوند و من جواب می دادم وقتی او میخوند من میگفتم مالی کیه وقتی من میخوندم او میگفت مالی کیه تا رسید به اینجا که دوست من بایگهش گفت که حالا من دو باید شعر میخونم و با تو شرط میبندم که نتونی بگی مالی کیه من به این برخورد و, و گفتم که حاضرم شرط خب چون تو در یک کتاب پروشی واسده بودیم شرطی که بستیم دیوان حافظ بعد ایشون دو به چهر و به من گفت از من قدری فکر کردم ده همون خیلی به نظرم آشناه نام شاهر رو گفتم ایشون گفت نه این طور نیست ولی اون نیست دوباره گفتم یکی سه دیگر باز گفت من اون نیست نتیجه این شد که من بیش از ده یا دوازده یا بیشتر نام شاهر رو گفتم و ایشون گفت که نه من هیچ کدوم از اینا نیست خب تسریم شدم گفتم من کتابو دیوان حافظ به شما بازنده هستم حاضرم همین الان بخرم و بدم بهتون و همین کارم کردم گفتم خوب الان بگو مالی کیه گفت که این شعر مالی رزا ثابتی است گفتم چطور مالی مهمیست و اینا و تا شروع کرد توضیح دادم فهمیدم که راست اونجه و توضیح هم این بود که یک مصره شعر داشت یا ساخته بود یا مال دیگری بود اینه آورده بود و داده بود به من که من این شعر رو تمام کنم من همونجا پشت قتیسیگار این شعر رو تمام کردم و دادم به بعد یاد تو که شما بعد ساخته بر بر شما. یادم نبوده, و نبوده شعرش این بود مصره ای که داده بود به من که من بسازم این بود که ستمگر چوب برف و ستمکش چو کوه. این مصره و ساخته بود یا مول دیگری بود نمیتونم اینو داد که من تمامش کنم و من اینو بردیشو تمام کردم حالا دوبهی تو میخونم این دار شد که ستمگر چوب برف و ستمکش چو کوه. از این گفته دل نکته دامود کند نموند از اون برف چیزی بجاج اگر کوه آتش پیش آفرین آفرین آفرین خیلی خوب شد خیلی خیلی, خیلی خیلی این خاطره ای بود که بسیار بسیار خوب بود و دلنجیز و ادبی و طعمزه و عالی خوب دیگه حالا از خاطره منصور بپردازید به شعر منصور این خودش شعر از منظوم است دیگه منظور درش مقطعه دیگه از نثر باید بگیم به پردازی به شعر با, با اجازهتون من یک غزلی میخونم بعد هم این تو قطعه دیگه هست که یعنی سه قطعه شعر از کردم در اوقظ برنامه از آقای مزارعی سرکارو شعر بفرمایید حالا برای اینکه طرز شعر خوندن خودتون رو شهر من بدونم ازل خودتون بفرمایید تا بعد از قرار پژوهش و آقای رضایی خواهش بکنیم شعرای بادر رو بخون. خواهش کردم. با اجازه. خانوم. غزلیاتوری. با آنکه آن در حریم تو بیگانه ام هنوز مانند حلقه بر این خانه ام هنوز. او گزشت شب ز نیمه و من با خیال توس می ناسفت به گوشه می خوابنم هنوز از شعله نگاه تو پربان نمی کنم. ای شمع من بسوز که پربانم هنوز چون گوهری که بر سر انگشتری نهند ای آشنا به چشم تو بیگانم هنوز گفتم چه الفتیست دگی سودی رو ترا دل ناله کرد و گفت چه دیوانه من ادا فرند ها آفر. درباره شعر دومتون توضیح نداری؟ خانم پژوهش میخونن آقای رضایی خانم پژوهش خانم پژوهش توضیح ندیدوا حسابتی درباره شعر اینا بگم عنوانش رو عنوان این قطعه چنگ سکوت و خودش خودش هم گویاز که چی بردهترین پرای... گوینده دلوقتي. احساس تون همشه دیده خواهیش کنم خانم پششوشی آقای سرمی شما همکاری بفرمایید درد جان کاہ مرا کس نشناخت درد جان کاہ مرا آه جام سوز مرا کس نشنی هیچ کس این همه با درد نساخت هیچ کس این همه بیداد داد وان که با ماز سفادم دم می‌زد جز به فکر هوس خیش نغو وان که در راه وفا سر می‌داد مایه درد سری بیش نبود آن که در عرصه پهناور عمر، گام یا سود نرفته است، منم، وان که با آن همه امید دراز، کامی از کسب نگرفته است، منم. ندانست که دیوانه کیست این که از دشت جنون میگذرد گذرد هیچ کس با من قمدیده نگفت که شب و روز تو چون می گذرد که در راه تو ای لعبت ماست دین و دل باخت چون پیش منم بیرگاهی است که با چنگ سکوت نقلم پرداز دل خویشتنم شعرشون قشنگ خوب آقای رضایان آقای شریف منتظرن که این شما منتظر آقا شریف ازیر یا شریف آقای شریف شروع ببرمید که آقای رضایان شعر آقای صحابتی رو بکنید یکی دو خطی بلی بلی از باد شامگاه محتا پا شکسته به دامان جویبار و از نقطه های دور شباهنگ شب نبرد می نالداش از گوشه افق تابت به کوه و دشت روز دخری در پرتش گفته محتاب گشت باز آگووش دختری در خلوت سرر سرمست و کام به من می کند نگاه بالد سر به گمه او بوسه میزند در آن گریزگاه آرام و شرمناچ من منده خیره بر رخ اندیش زای او پیچیده در فضای دلنگیز بام داد موج صدای او تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک باور مکن که دست زدامن به شب گناه از آن شب گناه با سال‌ها چه رفته و آن ماه مهریار دست طلب نهاده به دامان دیگری با روح بی‌قرار بی‌دار و آشفار من مانده خیره برفلک و گشت روزگار او آرمیده در بر آن مرد کامجو سرمست و کامکار در خلوت سکوت آهنگ ناز می کند آن مه برای او در خلوت سکوت آهنگ ناز می کند آن مه برای او در گیر و دار نیمه شب از پشت پنجره آیت صدای بود تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک باور مکن که دست دامن بدارم من یک شعر متعالی بلندی بود و موضوع فریبم خوب درش مجسم شد خیلی خیلی زیبا با لفظ زیبا ظرف و مظروف هر دو عالی بود آقای ثابتی و خیلی لذت بود. شنوندگان صاحب بیر. بنده به همراه شاعران گرانمایه و هنرمندان ارزشمند و گویندگان هنرمند با شما خداحافظی میکنیم. وقتتان پیروز و شم عمرتان پرتوفروز با.